ها. قصبی کا در یکی از استانهای شرقی من لب مرز قرار گرفته است زمستان در این قصبه شش هفت ماه طول میکشد. آن همچه زمستان با برف زیاد و کولاک و بورا اعضای حیعت اجرائیه حزب حاکم در پایتخت، جلسه های زیادی تشکیل دادند و پس از مشورت های زیاد بخشنامه‌ای نوشتند تا برای دورترین و کوچکترین سازمان های حزبی در سراسر کشور فرستاده شود. رئیس تشکیلات حزب در قصبه کا همین که بخشنامه را خواند، برش بود. قلبش چنان می تپید که گویی قرار است همین الان در باز شود و مسئولین حزبی وارد شوند. شورای حزبی قصبه کا تشکیل جلسه ده. رئیس که سعی می کرد خودش را جمع جور کند به حسنی افندی عضو شورای محلی حزب و کت خدای تاش محله و صاحب هتل مدرن پالاس رو کرد و گفت جناب حسنی در جلسه های رسمی به هم جناب میگفت این نامه رو یه بار بخونیم حسنی افندی هتلدار دار بخش نامه را خواند پیدر به شهردار گفت دارن میان منم اونجوری فهمیدم اونطور که از این نامه پیداست، است دارن میان مرکز در بخش بعضی سوال ها میکرد و جوابشان را میخواست جواب سوال ها را یکی یکی دادند یک در قصبهمان پنج هزار نفر عضو رسمی حزب وجود دارد که همگی در صورت لزوم آماده جانفشانی در راه حزب هستند اما تعداد اعضایی که حق و عضویت می پردازند کمتر از پنجاه نفر دو، عوامر عالی متاه است. مراسم استقبال با شکوهی ترتیب داده شده است. دانش آموزان دبستان هر روز لباس نو به می کنند و در ایستگاه جمع می شوند. به همه یک خداهای روستاها نیز خبر داده ایم، هر کس در روستایشان قادر به راه رفتن است، هر روز به ایستگاه بفرستند. علاوه بر این، به قصبه های همجوار نیز خبر داده ایم، به وظیفه انسانی خود، هر کدام، نیروی کمکی سه چهار هزار نفره برای ما بفرستند تا اگر فردا روزی همین مسئله برای آنها بیش آمد، ما جبران بکنیم سه هز در غصب ایمان دو تیم فوتبال تشکیل داده و به این ترتیب جوانان را در آغوش خود جمع کرده است برای آنکه در روز تشریف مسابقه ای بین این دو تیم برگزار شود دستور داده ایم هر روز به تمرینات مرتب بپردازند. علاوه بر این برای جمع کردن هرچه بیشتر جوانان در آغوش حزبمان دو گروه تئاتری تشکیل داده ایم تا نمایش نامه های درام با ماهیت آموزشی و نمایش نامه های کمدی اخلاقی به روی صحنه ببرند این دو گروه تئاتری نیز در هنگام تشریف فرمایی شما در حضورتان به اجرای نمایش خواهند پرداخت نامه جوابیه را به اداره پست تحویل دادند سمستان یک دفعه از راه رسیده بود. قصبه کا در عواست ماه نوامبر زیر برف مدفون شده بود. وقتی نامه را پست میکردند راهها بسته نبود، اما بعدش راه بسته شد. و قطاری که نامه را از که به آنکارا می برد، در 23 کیلومتری یک در اولین ایستگاه مانده بود. و نتوانسته بود جلوتر برود. برف راه را بسته بود. همه ی نامه ها، حواله ها و بسته های پستی در واگان پست مانده بود. نامه های جوابیه و گزارش ها از همه سازمان های حزبی به مرکز حزب در آنکارا رسیده بود. به مسئولین حزب در قصب یکا به دلیل این اهمال کاری نامه توبیخامی نوشتند. تا این نامه را پست کنند، راه دیگر کاملا بسته شد و نامه در راه ماند. حزب های یک ها برای مطرح کردن خودشان با یکدیگر مسابقه رئیس حزب و شهردار امیدوار بودند بتوانند خودی نشان بدهند و در انتخابات بعدی کاندیدای حزب بشوند مدیر مدرسه هم یک هفته زحمت کشیده بود و برای رئیس حزب متنی نوشته بود تا در مراسم استقبال بخواند در عوض هر شب به حساب رئیس میخوردند و می نوشیدند. طوری شده بود که رئیس حزب هر شب پای بساط میکوشید این متن را که مدیر مدام اصلاحش میکرد از کند. مدیر مدرسه کلام رئیس حزب را قطع میکرد و میگفت اینجا صدا تو یک کمی بالا ببر. اینجا یک کم سکوت کن. چشماتو اینطوری به دور و اطراف بگردون. یه لبخند بزن بعد دوباره شروع کن. شهردار هم مشغول تدارک مهمانی بود. شنیده بود حسنی افندی صاحب هتل مدرن پالاس برای مراسم استقبال میخواهد فراک بپوشد. با خودش میگفت که اینجوری از همه جلو میزنه خب معلومه تا وقتی یه نفر فراک پوش باشه یه نفر باشه که فراک پوشیدن بلده کس دیگر وکیل نمی‌کنن بردارن ببرن مجلس تو آنکارا حسنی افندی هتلدار در سال‌های اول جمهوریت که به نمایندگی حزب به آنکارا رفته بود این فراک دست دوم رو از آنجا خریده بود زنش فراک رو از صندوق درآورد تکانش داد تا او بریزد اما فراک جوری به تن حسنی افندی نمی رفت. لباس کمی کوچک شده بود. حسنی افندی هم بزرگ شده بود. دکمه های شلوار هم به هم نمی رسید. در مرکز از اینکه که غصبه یک اش را نفرستاده خیلی عصبانی بودند. این بار شدیدتر شدید پاست کردند. هم خبری از جواب نامه نبود. تشکیلات های حزبی بعضی بخشا به حزب های دیگ گفتن نکند تشکیلات غصبه یکا هم میخواهد همچو کلکی بزنند. برای اینکه مقدمات هاشتی کنان را فراهم کنند، این بار نامی برای غصبه یکا فرستادند و از تشکیلات آنجا خواستند، حیعتی به مرکز بفرستد. از بخش هایی که کم مانده بود از حزب جدا شوند، حیعتی به مرکز دعوت میشد اعضای این هیئت را کل گنده های حزب حضور میپذیرفتند. به افتخارشان مهمانی میدادند و وقتی عکس هایی را که با هم انداخته بودند در روز ها چاپ می ارتباطشان با مرکز ما میشد. می قصب یک ها به دعوت مرکز هم جواب نداد. چون همه ی نامه ها در راه می و به دستشان نمی رسید. برای دو تیم فوتبال قصبه به زحمت ایجده بازیکن پیدا کرده بودند. هنوز چهار بازیکن کم داشتند. معمور ایستگاه، دو تا معلم، سه تا کارمند حسابداری ویژه، مأمور بهداشت و مباشر وارد تیم شده بودند و بقیه را هم با شاگردهای مدرسه جور کرده بودند. وقتی خبر رسید که برای بازی فوتبال به کارمندان می دهند، علاقه به فوتبالیست شدند یک دفعه زیاد شد. حتی صلاح الدین افندی پنجاه ساله منشی بخشداری هم آمد و گفت می‌خواهد دروازه‌بان شود. در زیر زمین خالی هتل، تئاتر جوانان درست کرد. علاقه به تئاتر بیشتر بود، فقط هنرپیشه زن پیدا نمیکردند. آخ اگه تابستون بود چی می شد. تابستان ها, ها، خواننده ها و گروه های موسیقی به قصبه می آمدند و می شد یکی دو تا زن از آنها اجاره کرد. تصمیم گرفتند یکی از مردها را زن پوش کنند اما هیچ کدام راضی به این کار نشدند. مدیر مدرسه نمایش پیدا کرده بود که شخصیتهایش همه مرد بودند. هر روز همان نمایش نامه را تمرین می کردند. رزا به زرگر از حزبی های قصبه ای گفت بی خودی زحمت نکشین. این همه تدارک نبینین. راها بسته است، قطار کار نمی کنه که. رئیس حزب بخشنامه ای را که دو ماه قبل آمده بود به طرف رضا زرگر گرفت و گفت اینو بخون. نوشته خیلی زود میان. اگه قرار باشه بیان مگه با قطار میان. یه دفعه می بینی همه جای غصبه را ماشین گرفته بگو ببینم جناب رضا بیگ اون وقت باید چه خاکی تو سرمون بریزیم بابا میگم راها بسته است راها واسه من و تو بسته است اونها اگه بخوام بیان گوششون به این حرفو بدهکار نیست جلوی کادیلاک هاشون عرض کنم خدمتتون هزار تا تراکتور ردیف میکنن همون گرمای تراکتورها برفارو آب میکنه و راه باز میشه شاگردای دبستان و مدرسه راهنمایی هر روز با معلمهاشان به اسگا میرفتند. و برای مراسم استقبال آماده می شدند. تو یه قصبه و دور و برش زمستان گل که هیچ یک با تعلفف سبز هم پیدا نمیشد. معلم دوخت هنرستان معلم دیگری نداشت. با کاغذ رنگی یک دسته مصنوعی درست کرده بود. گلشن دختر یازده ساله بخشدار هر روز با این دست گل به ایستگاه راه آهن میرفت. به گلشن یاد میدادند. وقتی کله گنده ها از ماشین یا قطار پیاده شدند، این دستگل را چطور به آنها تقدیم کند. عواست ماه مارس، دیگر همه از این آمادگی برای استقبال خسته شده بودند. تمرین ها هم شل شده بود. رئیس حزب هم، چون بفهمی نفهمی امید شده بود، میخواست از مرکز بپرسد که بالاخره میآیند یا نه. با خودش گفت مستقیم از مقام مافق پرسیدن صورت خوشی ندارد. رئیس در دوره خدمت نظام گروهبان خوبی بود. باید کلکی زد و به نوعی غیر مستقیم از قضیه سر در آورد. چون تلفن بین شهری کار نمی کرد، تصمیم گرفت از تلفن جانداریری استفاده کند. به پاسگاه ژاندارمری رفت. تلفن جانداریری تلفن مقناطیسی بود و نمیشد با آن مستقیم با آن کارا صحبت کرد. گروهبان جانداریری گفت: ما با فلانی حرف میزنیم. اونجا بیسیم هست. تلفن میکنیم. اونها از فلانی میپرسند، اونجا با آن ارتباط داره، اونها با بی سی از فلانی میپرسند، فلانی هم از فلانی میپرسه راه آهن که چهار ماه بود کار نمی کرد، بالاخره راه افتاده بود و قرار بود روز بعدش اولین قطار به قصبه برسد خبرها با یکدیگر دیگر می آنطور که معلوم بود کلگانده ها با قطار میآمدند. آنهایی که در نمایش تئاتر نقشی داشتند چون نقششان را فراموش کرده بودند. دوباره شروع کردن به از کردن نقش. فوتبالیست ها آخرین تمرینشان را انجام دادند. در بازی کاروند بهداشت چون به جای توب هوا را زده بود، مصدوم شده بود. استقبال کننده ها صبح زود در ایستگاه راه آهن جمع شده بودند. گروه نوازنده ها که مارش ازمیر و مارش جزایر را خوب می نواخت، وسط استقبال کننده ها قرار گرفته بود. یک دهول زن، یک کمانچه زن، یک سرناچی با یک کلارینت نواز اول همه شاگردهای های مدرسه ایستاده بودند و بعد از آنها بازیکن های دو تیم فوتبال با لباس ورزشی، بعد از آنها هنرمندان تئاتر جوانان جا گرفته بودند. پارچه بلندی را از این سر ایستگاه تا آن سرش کشیده بودند و رویش نوشته بودند. خوش آمدید. بود. پشت سر استقبال کننده های ایستاده بودند. هزبی هم که از غصبه همسایه آمده بودند آنجا بودند. رئیس حزب تا چشمش به دستگلی افتاد که قرار بود به کل گنده ها بدهند عصبانی شد دستگل را از بس هر روز به ایستگاه ها ورده و برده بودند گل ها کثیف خیس و لهیده و پاره شده بودند اما عصبانیت اصلی رئیس حزب از دستن حسنی افندی هتلدار بود از آنجا که فراک تنش کرده بود رفته بود بالاتر از همه ایستاده بود یک دفعه انگار مهم شده بود و چون فراک تنش بود کسی هم جرأت نمیکرد بهش بگوید عقب وایستا فراک شهردار نو بود اما به فراک نمیمانست چون کراوات سیاه همگیرش نیامده بود کراوات رنگی بسته بود رئیس حزب از فرط نگرانی و هیجان سخنرانیش را فراموش کرده بود مدام به دستشویی می‌رفت و متن سخنرانی را در می‌آورد و سعی می‌کرد حفظش کند همه جا را با پرچم کاغذی تزیین کرده بودند وقتی صدای سوت قطار آمد هیجان به بالاترین حد خود رسید قطار وارد ایستگاه شد اول بخار همه جا بعد هم همه شد. بعدش از پشت صدای کف زدن و زنده باد بلند شد. گروه نوازنده ها با ضرب آهنگ دهل شروع کرد به نواختن مارش اسمیر. آدم های از قطار پیاده می شدند اما معلوم نبود کدامشان کله گنده است. شهردار داشت دست چاخترین آدمی را که از قطار پیاده شده بود می بوسید. صاحب هتل مدرن پالاس هم همین که خم شده بود دست مردی شیک پوش را ببوسد شلوار تنگ فراکش از پشت شکافته بود. جوانان حزب هم مرد بیچاره را روی دست بلند کرده بودند. احالی فریاد می زدند. زنده باد. زنده باد. این شلوقی و دادا و فریاد و هر جا مرج حدود پانزده دقیقه طول کشید. بعد همه ساکت شدند. صحبت های درگوشی شروع شد. نیومدن. با چه جای خودم دیدم شردار داشت دستشو ماش می کرد. می اون یه مسافر عادی بوده. مگه میشه همچین چیزی؟ یه شی کمی داشت ماشالله. مگه ممکنه مسافر عادی باشه؟ در همان موقع مأمور پست تعدادی پاکت به دست آمد پیش رئیس تشکیلات حزبی بخش. همه نامه برای حزب آمده بود. آن هم از مرکز. رئیس حزب هیجان زده نامه ها گرفت تا آن موقع پیش نیامده بود که این همه نامه یک دفعه از مرکز برسد. با انگشتان لرزان پاکتی را که روی بقیه بود باز کرد. دروبری ها نگاهش می چون سواد درست حسابی نداشت گفت دمیر علی، پسرم، عینکم همرام نیست. اینو بگیر به خون ببینیم چی نوشته. دمیر علی را که از مرکز آمده بود با صدای بلند خواند. ریاست تشکیلات حزبی کا. از آنجا که بی تشکیلات محلی شما نسبت به امور حزبی ماهاست ادامه دارد و از نظر ما به اثبات رسیده است که ریاست تشکیلات در آن منطقه قصد خرابکاری در داخل حزب و پایمال کردن انزبات حزبی را دارد بنابر تصمیم هیئت اجرائیه حزب از این تاریخ از کلیه سمتهای حزبی معزول و حال رئیس حزب خراب شد. رنگ رخ اعضا زرد شد. سکوتی طولانی همه جا را فرا گرفت. بعد شهردار گفت: برای پنجاه نفر تدارو که مهمونی دیده بودم. این همه خرج و مخارج چی میشه؟ کاپیتان تیم فوتبال گفت: حیف شد. توی سیاه زمستون با شرط و پیرهن ورزشی بیخودی این همه تریک تריק درزیدیم دمیر علی گفت: تئاتر رو چی کارش کنیم؟ هنرمندها حتی گریم هم کردن. رئیس حزب خونش به جوش آمد. با عصبانیت گفت: دوستان، ما این همه تدارک دیدیم بله، درسته حیف میشه، گناه داره یه پیشنهاد دارم الان همگی با هم عضو حزب قدرت ملی میشیم چی میگین؟ همینجور آماده بمونیم کلگنده های حزب قدرت ملی رو دعوت میکنیم بیان دعوت کنیم تصمیم گرفته شد؟ بله وقتی داشتن برای امضا کردن ورقه تغییر حزب و عوض کردن تابلو به طرف ساختمان حزب میرفتند دمیر علی که خبرنگار یکی از روزنامه‌های استانبول بود، تلگراف زیر را برای روزنامهش فرستاد. ریاست تشکیلات حزب فلان در قصبه‌ی کا به اتفاق 500 نفر از اعضای آن حزب چون روند حرکتی حزب فلان را مضر به حال کشور تشخیص دادند و احتمال نمیدادند که بتوان این روند را اصلاح و تصحیح کرد، دست جمعی استعفاده دادند و به حزب قدرت ملی